Radiofilm یک تکه نان نویسنده محمد رضا گوهری خلج میگن شورای شهر باید با میز انتظامی همکاری بکنه من چیکار کنم قومن سیدی تماس میگه کی نتونه امضا کنه و اسمشو بنویسه اش کارته پای خدمت نمیده زنده یاد احمد آقالو الله خدا میدونه چه محشری به پشت اون بالا یک کاربولا را تسلی کشیکو با ايرادیاتش که از هفت بندش آب گذرد ده دهکردی باز میگه موتور بابا میارم دیگه رو برز دو روز موتورو ورزدیا تو مسافر منو بالا پم ببرم ثواب تره فرزين محدث لای قربونت برم من وجود لای قربونت برم <تصفح> به خدا خوب کاری کردی که اومدی سر مننت گذاشتی من برق نبرد دیشب که خونه نفته اینا هم فکر کردن نفته ها هاتون کم قوا بودی نفیا ور رضا کیانیان چه دایی از این بهتر ها سلام که اسم خودشه سلام علیکمم که یعنی خدا با شماست آهنگساز پیمان یزدیان کارگردان کمال تبریزی در منطقه‌ای کوهستانی چوپانی گله بوزها و بوسفندان رو هی می‌کنه تا در یک جا جمع بشن. سگهای گله هم در کنار گله پرسه میزنن. در هوای مهالود اونجا چوپان پسر جوانی رو می‌بینه که با لباس سربازی پشت به اون تک و تنها ایستاده. مادر کفش‌های گلالود دخترش مریم رو با پارچه‌ای تمیز میکنه. دختر لغمهای در دست داره که میخوره. چیرنگات کفشاتو کثیف می‌کنی. روی چرا, چرا نیستی؟ من یه طرف برو که گلی دیگه. مریم راه میفته. یه پاش مریم, پات مریم در خونه رو باز میکنه و بیرون میاد. قطر آبی روی صورتش میچکه سر به آسمون میبره شب بوده که از برگ درخت چکیده مریم در روی برگهای خزان زده راهی مدرسه میشه پسر جوانی دوان دوان از کنار مریم رد میشه چوپان در کنار گله خودش آتش افروخته و نشسته سرباز جوان هنوز همونطور اونجا ایستاده دو سگ گله اطراف اون میچرخند و سرباز کوچکترین تکونی نمیخوری چوپان نگاهی به اونا میکنه سگ ها سرباز رها کرده پیش چوپان میرن پاسگاه منطقه در پاسگاه باز میشه و پاترول قدیمی پاسگاه وارد محوطه میشه که تعدادی سرباز والیبال بازی می‌کنند. در کوه دو سگ گله کنار چوپان دراز کشیدن خطریه دود گرفته چوپان کنار دستشه سرباز همچنان بی ایستاده چوپان بلند میشه و از بین گوسفندها و بزهار رد میشه و خودشو به پسر میرسونه مغازدار جوون شیشه نوشابر سر سرجاش میذاره و به چهار جوونی که در کنار هم نشستن میگه این <تصفيق> رو <تصفيق> مغازه دار که چاقوییم بر در دست داره وارد مغازش میشه دو جوان دیگه هم به چهار نفر قبلی میرسن و با هم دیگه خوشوبش میکنن درون مغازه مغازه با چاقویی دستش تکه از گوشت آویزان رو میبارن دو کامپیوتر هست که دو نوجوان مشغول بازی هسته بر دیوار مغازه هم زده شده فقط برای نوار مجاز سوال شده ظاهرا مغازه همه کار است. تلفون همراه دار زنگ میخوره و با هنسفیلی صحبت میکنه اونه اونه اونه اوه اونه اونه اونه اونه فروش نیم ساعت تموم شده آره باز میگه موتور بابا میارم دیگه دو روز موتور رو قرض دیگه چرا تو مسافرم؟ املا بایی میبرم سباب داره ببین اصلا آنتن نیستی برو توانتن صدا تم نمیشته من برو آره داشت میری بی سانسوریت چی شد؟ جون... باز اومد بابا فعلا با همی صدا خرابه حال بکن میاد ولی اسراف نکنی ها نمیدونی چه که... خاک تو سرت کنه اون رایدر هفت اومده هنوز تو دوش گیر کردی سفتریه دیگه. این عرفا نیستی؟ بیاجی برو حالشو ببر بیه حساب شدیم بله خیلی ممنون نو کردم آقا خلوب تعطیل جل پسیس جم کنیم یالله جونه جونه بله بابا مشنمت شما که بدبله تر از میخوانم اتونی اون من ندیدم یا خدا رسولی میگم ندیدم دیگه یا جمعی جوان ایستادن و مشتاقانه به حرفهای محیطبانی که با لباس سبز و کلاه قهوهای برای اونها صحبت میکنه گوش میکنن از پایین دره می‌گیرین تا اون ور قله 50 کیلومتری میشه دو نفری که زودتر به خط آخر بردن استخدام میشن اینی بود تا سرتون میاد هر کی تلنگش در رفت درد سوار شد روشن شد آدم میگم نمینم چطور دهنش به جون میکنه. اگه از اگر مردین حق نردید با از جوان ها زیرزیرکی میخر هر چیزی بهتون ریختن ریخته نان هاتون بردیم بیرون ببندش تو اینا رو گفتم که حساب کار بیاد دستتون اگه فردا استخدامم شدین زیاد کیفور نشین کار کار سختیه ما اون نمیبوسه هر کی تو بمونه گردن خودش اشبرسه خدا یار جوانا حمله میکنند که هر طور شده سوار مینیبوس قرمز بشن. می پسر دونده دوان دوان خودش رو به مینیبوس بوس مینزونه. به زور از لابلای جمعیت رد میشه و با زحمت سوار میشه که همین موقع موهیتوان میاد و در مینیبوس بوس رو به سختی میبنده. پسر دونده که آخرین نفر بوده، شیشه مینیبوس دماغ و دهنشو له میکنه. مرد موهیتوان بقیه رو پراکنده میکنه و مینیبوس بوس راه میفته. در پاترول پاسگاه سرگروهبان رانندگی میکنه. نگاهی به بغل دستش میکنه. چیزی نمیگه. باز هم به اون که کاغذی دستش و با خودکاری چیزی روی کاغذ مینویسه نگاه میکنه. و باز هم چیزی نمیگه. بغل دست سرگروهبان همون پسر جوان سربازه. پسر فکر میکنه و باز میخواد روی کاغذ چیزی بنویسه. در راه رفتن به درختان سرسبز و کوهستان نگاه میکنه سرگروربان کاغذ رو از سرباز میگیره و نگاه میکنه چیکار میکنه ها؟ همه اسپی میگه هر کی نتونه امضا کنه و رو بنویسه بهشکارت پایین خدمت نمیده ته ماسی خب بگه هرکی هرچی میگه تو باید باور کنی چوفانه گفت پوتینات بدونم تا هم برشتاد برمی راحت شانس رو کرامت یه جفت پوتین اضافت داشت سر صبح بایی نری ندیجه نره هم بلدی این قاتلی که به نربندش نگاه میکنه با آدم ظلم زنه خدا میدونه چه محشری پشت اون بالا یک کربلا را تو سینیکشی کو سرگروبان ای را از سر کاغذ از ماشین به بیرون میندازه و به راهشون ادامه میده آدمای تو می که ما گرفتار میشیم. سرباز با انگشتان خودش در هوا تمرین امضا میکنه پیرمردی مؤمن و تسبیح به دست با کلاهی بافتنی روی تکه سنگی زیر درخت نشسته و منتظره مینیبوس قرمز در کنار جاده ایستاده و مسافرینش در حال امتحان دادن هستند و میدوند. دو نفر نالان به مینیبوس برمیگردند و پیرمرد به اونها نگاه میکنه. اتومبیلی شاسی بلند و مدل بالا از جاده رد میشه و به بالا حرکت میکنه. پیرمرد اونو نگاه میکنه. ماشین سرگروهبان جوش آورده. در راژیوتارشو باز میکنه که آب بیرون میزنه. مو بیشتری شغلامایی ببری دوباره و همچین جسمونم از بیشش نمایش می‌کنی. بچو بره. یا کجی استان باید برسی؟ یه تانک را با, با بخوا. کاری دنبه نی. خودمان مسخره بپریم. سرباز با دبه آب نداره. دب را به گروهبان میده گروهبان آب رو توی رادیاتور ماشین می‌ریزه. ماشین رو راه می‌ندازند و در جاده پرپیچ و خم به راهشون ادامه میدن. امیر با موتور از راه میرسه. کلاه دستکش داره. فریشم هم طبقه معمول توی گوششه پیاده میشه و پیش کربلایی میره و باهاش دست میده علیکم امیر پیش کربلایی میشینه بشیم بشیم بشیم گفتم دیگه رفتی ها خیره انشالله اینا دوباره زنی میزنن اصرار پشتی اصرار دوباره هم زنی میزنن ها تورا که میومدم امرولا رو دیدم میگم چربلایی با مهم رو نره برز کو بهتره امرولا میگو میگه مردم حرف برمیارم مردم؟ من که سرم به کار خودم بود داشتم باربونه ای سفر رو میبستم خوب خودت شاهد بودی فرمونده پاسکا صد بار پیخون پسخون فرستاد میگن شورای شهر باید با میروی انتظامی همکاری بکنی من چیکار کار کنم خدا خیرش بده این ملا همیشه وقت شکار تنگش میگیره آمانده الان هم وقت مریض شدن بود اصلا من چرا باید به جاییمون برم از دور ماشین پاسگاه ها میبینن اومدن کربرای با دیدن ماشین که نزدیک تر شده بلند میشه امیر هم بلند میشه کی بچه برادره؟ نه امرلا اوناره که میدونم دردشون چیه امرلا چی میبود؟ بچه پسرش توبی از برزکو اومده. راستاسی بزنید که خبرهایی کربلایی. خدا آلمه. نه خبرایی انگار از این سر زمین بوده. میخواسته برگرده میبینه هواد تاریک شده. میگوه من تا اینجا اومدم بزن نماز مغربشه رو توی اما امونزادو بخونم که ایم اتفاقا مینفته. میگن زنا لباسش شای زار تیکه کردن گذاشتن تو جا نمازشون. حالا به خدا خبرش همه جا پیچید اونا با همینش مخالفن دیگه منطقه مرزیه از برز کو تا مرز یک راهه. نمیخوان حکایتی دو سال پیش بشه مثل ماجرای غلام علی که از چین و ماچین چین شدن آمدن اینجا خلاشه گفت با مامور بری سر وقت نظر کرده خدا برات خوب نیست به همین زودی هم شد نظر کرده خدا کربلایی <تصفيق> مات به ماشین نگاه میکنه حالا این رو کن برادرت زنگ زدن چی بگم؟ اون بابایی که سندلی عقب نشسته ملافظ نیست دستار به سر داره؟ حتما حالش خوب شده شکر کلی گرفتاری داشتم کربلی؟ کجا رو داری میگی؟ ها؟ یه راننده از یکی کنارش نشسته کس دیگه نیست که؟ من عقب میگم سندلی عقب خدا کنم الله فیض باشه منو چه به جواب کردن از مردم دونه فرندیگه خدا رسولی کربلای باسی فکر برای چشاد با کنی کربلایی پولی به امیر میده چشا ایرادی نداره بعد یه فکری برای آفرات کرد باشه حالا زیاده ها زنگ زدن بگو را افتاده طرف برز میگم زیاده اون دفعه هم پول خورد نداشتم نگرفتی خدا کربلایی چند قدمی میره بگم میری سری بهشون میزنی تو فقط بگو رو افتاده کربلایی هر چی بوده گذشته این بندهای خدا به جلو زبلز افتادنا کربلایی اعتنایی نمیکنه و چتر در یک دست و بخچه ای در دست دیگه از امیر دور میشه نخیر مونی که دو تیکه شد اونم به حالش سلام قبلی سلام سر سرباز پیاده میشه و جاشو به کربلایی میده و خودش میره و عقب میشینه کربلایی شب ما که از آفتاب در اینجا نشستیم ما هم که آفتاب. پر رو کربلایی گرفتار شد. یکی از سربازه دردر کرد باید میرسوندمش به اداره سربیشه دید ماهتر شرمنده جا نیزود بتواندیه خب کبله از خبر همین چیزایی که شما شنیدید دو کارگر کربلایی رو کربلایی. کارگر کارگرها از اینکه کربلایی رو در ماشین دولت دیدن تعجب میکنن و سری از تعصف تکون میدن اما اونا به راهشون ادامه میدن امتحان استخدامی ادامه داره و جوانها میدون و از رودخونه رد میشن مویدبان که کنار مینی چوب به دست نشسته اونها رو نگاه میکن ماشین پاسکا از راه میاد اسماعیل به ماشین نزدیک میشه آ اسمان چقدر تلافات دادید سلام سلام سلام چای سلام علیکم سلام. سلام چیزی نیست چهار نفره امسه چند نفر بخوام دو نفر برای دو نفر یه لشکر الاوف کردید توی کو کمر خودمون که الاوف ترین که هر صد متر دو صد متر باید ترمز بزنیم این جنازه کی میاد بالا خوزش الله میری چه خبره هیش چی هان خبره دیگه معنی نیدی؟ ندی معجزه شده میگن که یه چیزایی شنیدم تو میرسه مردم یه چیزایی میگن دین و اینونو درستی داره تا زکات گندمشو میشونده محصول خونش نیبره چون زکات میده باید یه یشب بشه حافظ قرآن چی بگم والا؟ چند سال پیش محصولش آفت زده بود بخاطری که از خدا گله نکنه سر زمینش نرفت یه همچین آدمیه حالا میخوام بری برزکو چیکا هیچ برش نداریم میرمش پاسگاه برزکویا این دائی محمود فنور حالشون نیستا نری اونجول دورم دورم دراری نه کبلایی هم برای همه با خودمون میبریم کبلای خودش حافظ قرآنه برزکویا میشناسنش جیرو خود جون یه چند تا سوال ازش میپرسه راست دروغ معلوم میشه کاری نداری بهمان خدا سرباز به جوونی که مغموم توی مینی بوس نشستی نگاه میکنه و چیزی نمیگه ماشین در راه برزکو از جاده با درختان سرسحبه رد میشه کوهستان و ادامه راه سرباز ما تو ساکت به جاده نگاه میکن با تو محیطمان میخوان استخدام کنن پوست این بندهای خدا رو میکنن با پایه اوقه 80 تومن بیر بگی من با جناب سروان صحبت کردم حرف دستگیری اینا نبودستم چرا هر تو درمان کپری کی گفت دستگیرش کنی به من گفته لازم شد از برسکو بیارمش بیرون که جمعیت بالا همین اگرم خبری نبایی که پشت سر ماشین در حرکته به اونها نزدیک میشه یک مرد و زن با یک بچه ترک موتور سوارن این وسط برای هر که آب نمشته باشه برای ایان اینا اون داره تا شب ای به جنبه نخوام نه پووزه نفرم که ببرم و بالا از حد هزارات کنم که بگیرم چه پووز هزار ما بجنبییم نجومیم. در ادامه راه از رودخونه رد میشن ماشین باز جوش آورده سرگروهبان با همون در به آب می توی رادیاتور ادامه راه در کوهستان و سرباز به کوه و آسممون و تک درخت بین راه نگاه میکن کربلایی چرت میزنه. سرگروهبان سیبی از جیبش در میاره و با احتیاط گاز میزنه از صدای گاز سیب کربلایی میپره و سرگروهبان سیبو قایم میکنه کربلایی نگاهی به سرگروهبان میکنه و بعد به سرباز بچه کجایی سرکار این سرباز ما حسابش با بقیه سرباز جدان کبلوی یعنی با بقیه آدما جدا به بگو بچه کجایی هشت پی هشت پی کجا هست اول بپرس هشت پی چیچی هست بعد بگو کجا هست شهره شهرک د ده, ده کنه با دنباریک که نمتونی حرف از بکشی بیرون نیم ساعت طور میکشی داری یک کنون بگی خودش میگه یه چا چادر رو بل نسبت ما یه ما شطوره. آره ایم ماک خود داره سازمان جغرافیای کشورم بیری نمیدونه أش کجاست است. بالاخره هر چی که هست خودش که میدونه کجاست. ها؟ به سرباز نگاه میکنه و سرباز چیزی نمیگه. در گوشه ای ماشین رو نگه داشتن و سرباز با دو دبه برای آوردن آب از تپه پایین میره. خوش از اول عمرش های شش ماه پیش اومده خدمت فکر کرده همه دنیا یعنی همه أش به این نلموردی جای دیگه هم که نید همه مر تبرایی دنبال شطور بوده فقط از رو دفتر که از توسط اعام شده ما حس می زنیم که هبهگهی اما اطراف باشه تو کویر بالا پدری مادری پدر باگو سارگ بوده دیگه ا هم سری به شراب بی زده زن وچه که با خودش نبرده که به زور شایدش دسترسش بشه اما نکه از اجباری در رفته خاک بر سر رو ما اضاف خدمت خورده کرد بعضی کار فرهنگ میخوره حال بود چطوری؟ چطوری؟ یه برادر داشته از خوش بود برادره میمیره، یه برای این شناسنامه نمیگیرن. اسم همون میذارن روی. تو شناسنامه 37 حلشه. یه خود تا آخرش بخون. خدا و پیغمبر که سرش میشه. نماز کی میخونه؟ اما حالش هست که چی میخونه؟ من نمیدونم. فکرش بکن کربلایی. یه عمر تو بیابونه دنبال یه مو بوده. نه تلویزیونی نه رادیویی نه رفیق <laughs> الام نامه زدی به حوزه نظام تا دیگه منتقلش اونجا. درد سر. پیرمردی با ریش سفید هنازده و عینک تهگرد استکانی در کنار رودخونه نشسته. ذکر میگه و با انگشتانش ذکرها رو میشونه. سرباز با دو دبه کنار رودخونه میرسه و میخواد رو پر کنه که صدای خنده پیرمرد رو میشنوه. تازه اونو دیده پیرمرد اونو پیش خودش دعوت میکنه بیا بیا سرباز دبه رو کنار رودخونه میذاره و پیش پیرمرد میره و کلاهش رو بر میداره بیا شما که ثبات داره انشالله بله من یک دعا گرفتم بخواستم که شما این بر من بخونه که اون چیه پیرمرد از جیبش تکه پارچه سبزی در میاره که توی اون کاغذه کاغذو به سرباز میده سرباز میخونه سلام علیکم علیکی سلام همین کاغذو به پیرمرد میده پیرمرد به کاغذ نگاه میکنه خب همینه دیگه چه دعای از این بهتر ها؟ سلام که اسم خودشه سلام علیکمم که یعنی خدا با شماست ها؟ خب دیگه چی بقید خیلی خوبه که خدا با انسان باشه سرباز مبهوت به پیرمرد نگاه میکنه <تصفيق> برای همینی که یه باید بگیم سلام علیکم باد بگیم بگی. شما کجا میرفتی؟ سرباز جوابی نمیده ها؟ برز کو دیگه شما باید بری برز کو ولی بعد بیگی شما اگه نگی از کجا میدونی کجا می‌خوای بری ها سال همین آب رودخانه اگه حرف نزنه اگه نگی کجا شما از کجا میدونی که از اینجا باید آب ببری بری تشنه با پیر مرد بلند میشه و به طرف کندو واش میره مثلا این زنبور اصل اگر نگه چشه من از کجا بفهمم که چشه که اونو درمان بکنن این دوتا کندو داروزه دو که مزاجشون خوب کار نمیکن اصل نمیکن خب باید بشه بشن بلید. خوب بشن شما هم یا هلا خوبه دین کافی نیست. بعد دیگه آدم اونم کافی نیست. بعد کار بکنه شما فرض مثال بقیه این زنبورا همه رفتن سر کار ولی برمیگردن. شما رو بیا کمکو سر اینو بگیرم بزنیم اونجا. بیا. به کندی تو خالی اشاره می‌کنه. بیا دیگه. لا لا الا البته به عدد همه موجودات ها امیر دو نفر رو ترک موتورش سوار کرده و به برز کوه میره و از کنار ماشین پاسگاه و سرگروهبان رد میشه. مخه کار در اومده همه شهر میبرن اون بالا؟ چیت دیه. سرباز با دبه های پر از دور نمایان میشه. میدوه و به ماشین میرسه. در عقب و باز میکنه و دبه ها رو میذاره. میخواد سوارشه که سرگروهبان سر گروهبان پیاده میشه و نگاهی به لاستیک ماشینش میندازه. پنچره. لاستیک پنچره باید عوضش کرد بجاب شب شد. پنجری میدونی یعنی چه؟ زاپاس کجا کردی؟ زاپاس نداری که. سرگو رو با من فردا دعوتی دارم پس فردا رأس ساعت هفت باید تو شهر جلوی میدونم کرب روی ایتا یه ساعتی که من برنگشم هرچ خواست بود خوب این ماشین رو بذار همینجا خودمون یه جوری بیرون من ماشین دولتی دولت دولت که نبتونم برکنم به همون خدای کرب روی خب این پسره رو بذار پای ماشین بمونه یکی خود چارشو شمون وازم با به پسره باشه برای امه میگم شما باشه حال سرباز به طرف ماشین میگفتم سرباز برداشتم آپاندیس تر خب خوب بهداری خب خوب بقیام که رفتن گشت هم بازداشت بود از دو بازداشت کو بردم بیرون حالا برگردن کلی با سینجی پس بدم چرا سرباز دو بازداشت کو بردم بیرون از صبح تارو 900 بار گرفته من کفتهستم که بونه کرده بودم که ماشین از موتور تعویض میگیرن نگاه نمیکنن ببینن این زاپاس داره یا نه حالا طوری نشده. تا شب نشده من تو میزاره خونه خوب شد اومدم تو خدا چه چیزی بر تا چیزی شده سرگروهبان از کنار کربلایی میره که سوار وانت بشه کربلایی چتر در دست تنها مونده و تسبیح میندازه سرگروهبان سوار وانت میشه و وانت میره کربلایی پیش ماشین و سرباز برمیگرده در ماشین و باز میکنه کربلایی بخچش رو باز میکنه کیسه نون نون برمیداره گرستنت نیست؟ نکنه معنی گرسنگیرم نمیفهمی ما که زبت کردیم میره زنه انقدر نون راهیمون نکرده که کور بگه شفا حالا اسم چی یه هو کربلایی ترکتوری رو میبینه که یدکی به اون بسته شده و زن و بچه های مردم توی اونن اونا هم به طرف برز کوه میرن راننده ای سلام, سلام سلام سلام احمد نیفته از اون بالا نه نمیفتم کربلای کجا انشالله میریم برز کوف میرم تا عزیز شفام بده انشالله انشالله کبلایی مردم کرور کرور راه افتادن دارن میان منم گفتم احمد ببرم ای خدا من که چشاپ نمیخوره. کفر نگو. اینقدر این عزیز به فقیر بیچاره کمک میکرد. میگن از دیروز صبح که تو امامزاده پیداش کردن همینجور داره قرآن میخونه. حالا شما راه افتادید دارید اینطوری میرید بالا مطمئنید که هرچی شنیدید راسته ها که درسته. تا دیروز یه خط نوشته نمیتونست بخونه. قدرت خدا حالا قرآن با چشم بسته میخونه. کمک نمیخواهی نه، الان میاد. رابطه به بگیره میاد. به خاطر حضور سرباز این سوالو مطرح کرد شما که میای آید برزه آه شما برید ما می آید خداحافظ خداحافظ خداحافظ خداحافظ تراکتور میره و کربلایی و سرباز نگاه میکنه کربلایی کیسه نونو به سرباز میده بیا بگی بخور من دیگه از اشتاها افتادم کربلایی راه میفته و سرباز هم پشت سرش کجا؟ برو همونجا بگیر بشی منم پایین منتظرم هر وقت خیصد اومد من خبرم کن برو دیگه کربلایی چتر به دست از تپه پایین میره و سرباز تنها میمونه کربلایی از چتر به عنوان عصا استفاده میکنه کیسه نونو نگاهی میکنه به طرف ماشین میره در ماشینو باز میکنه که یک هو یک تک نان از کیسه به زمین میافته. دلا میشه بر میداره اونو میبوسه و به پیشونی میذاره و دوباره میزرتش توی کیسه کیسه رو میبنده و میخواد اونو توی بخچه بذاره که پارچه سفیدی در بخچه توجهش رو جلب میکنه روی پارچه آیاتی از قرآن نوشته شده و تعدادی امضا روی اون هست کربلایی به رودخونه‌ای میرسه روی تخت سنگی میشینه کلای بافتنش رو بر و چط کنار دستش میذاره جوانان رو میبینه که برای امتحان محیطبانی از کوه به سرعت بالا میده مینی بوس قرمز جاده حرکت میکنه و از کنار ماشین پاسگاه رد میشه کربلای کلاش رو دوباره سرش میزه منتظره مدتی گذشته سرباز در کنار ماشین به درختی تکیه داده و نشسته. کربلایی همچنان منتظره. به انگشتر عقیق دستش نگاهی میکنه و دستی به اون میکشه. صدای موتوری میشنوه. سر میگردونه کسی رو نمیبینه در فکر کاری بلند میشه. جوان موتورسوار عینک دودی بر چشم به کربلایی نزدیک میشه. کربلایی دوان دوان خودش به اون میرسونه. سرباز بلند میشه. سوت سطار و موتور خاموش میکنه من میرم دیگه از امروز گذشت. بعدا خودم زنگ میزنم با جناب سروان صحبت میکنم. من که گفته بودم کلی کار دارم نمیتونم زیاد معتل بشم. ای در ماشین رو باز میکنه و میبنده ببین. سرگربان بدون من نمیره باز. ولی تو هم بهش برو کربلایی هم گفت تو این اوضاع اگر نرید بهتر. رحمیدی. فردا میری؟ من که نمیتونم. کار دارم. شما هم خود دانید. کربلایی در رو باز میکنه و بخچه شو میبینه. پارچه سفیدو رو بر میداره. تو؟ و اینجا رو امضا کردی؟ بله. بی خود کردی پسر این آدون نگاه کن چیکار کرده نغزت معیوبه تو تو اصلا میدونی این چیه هست ها میدونی چیه حد بزن خب برای چی اینجا رو امضا کردی همه امضا کردن برم... کردن به تو چی ربطی داره که امضا کردن مگه بقیه هر جا رو امضا کردن تو هم باید امضا کنی را ببین چیکار کرد کفن مردمو اه لا لا هلالا به عدد همه موجودات عالم چی آمدم از سرباز فاصله میگیره و سرباز سر به میندازه کربلایی بغچه میبنده برمی داره در ماشینو میبنده میره و سوار ترک موتور ستاره میشه. سلام جبلی، سرویسه میروام. که سلام، من سر دو راهی بیاده میشم. میدونم امروز سر میز. سرباز با ماشین بدون چرخ تنها مونده. نگاهی به ماشین و بعد به اطراف. بلاخره تصمیم میگیره و با پووتین مستعمل راه میفته راه و درست بلد نیست لحظه مکس میکنه و بعد دوباره راه میفته لحظه می مورچه پشت گردنشه و اذیتش میکنه برش می داره. نگاهی به اون میکنه مورچه دست و پا میزنه سرباز مورچه رو آروم روی زمین میذاره مورچه میره و اون هم به راهش ادامه میده سرباز نگاهی به ماشینشون میکنه که چقدر ازش دور شده و به راهش ادامه میده. ستار و کربلایی در راه. کربلایی نگرانه. میستان که تو منطقه نیست. این پیکانام که گاردن جیرک نمیتونن بالا برن. میمونه همین موتور که فعلا قنچیش دستگاه بیشتر تو جاده نداریم ولی خبر به گوششون برسه همش رو از در جون میان. هر چیه تو این دو رو گاسه میکردین دیگه. ها که حرفی نداریم. که راه دو تو جاده این چه اعتماد مسافران با کاره که مثلا چی سواب کنه دو است که یکش سواب کرد ور مهشتم دنبالش بخونم بعد میگم که فقط این چی دور بزن دنبی کردیم همونجا که سواب شدن چرا را می چیز چه بودستی دار گر ثور داره کار با لعیمیم اولی سر بازار میکنیم با هم دار میگری اینجا میشه دو تیپی یه ور بیاری یه ور بیار یه ور بیار گری فوق که را یه شنبه گراغا چه ستار موتور متوقف میکنه، دور میزنه و برمیگرده سرباز در راه رفتنه که گاری اسبی به اون نزدیک میشه و گاریچی سوارش میکنه پیرمرد گاریچی همانند پیرمرد لبرودخونه با انگشتانش بازی میکنه چهرش هم شبیه اونه شما چه بینید؟ اگه شما نمیخوای بری برزه کو بله باید برم اونجا پس چرا چونه چرا میکنی دیگه کارتو بکن برو <تصال> گاری به راهش ادامه میده و پسر دونده همچنان میده سطر و کربلایی به ماشین پاسگاه رسیدن سرباز نیست رفته شاید ماشین خواهیده باشه کربلایی پیاده میشه در ماشین باز میکنه اما پسر نیست کیسه نونو میبینه بر نبود نه بود نه کجا رفته این اهی خبری نیست سرگروبان گفت موازه باشا سوارش کربلایی سوارش گور به ما چه ببرگردین. چند دختر پسر با لباس مدرسه به اونا میرسن ببینم بچه ها شما یه سرباز لاغر لاجون ندیدید از نیمارا رد دشه؟ چرا داشت میره؟, آره، آره، آره، آره، آره. داشت میره؟ مریم هم با پای با اون همین جلوه بریم مریم کیسینون رو از کربلایی میگیره کربلایی برمیگرده و ترک موتور سوار میشه و به راهی که بچه ها گفتن میرن افم بچه رو گفتیم الان میان دوباره بچه ها می و مریمم لنگان لنگان میدوه می که یک رو زمین میخوره. خوره کیسه اینون از دستش میفته و تکنون روی زمین میفته تکنون رو از روی زمین بر می داره و توی کیسه می زاره. سرباز در گاریه و گاریچی با اون حرف میزنه. گاریچی و سرباز پیاده از و گاری رو می کشن دیگه از مله ااصلی اثر گرفتم این گندم های نظینم باید دوبرم آسیا بدم آرد کنن کار دیگه من این کارو میکنم کنمم اسب این کارو میکنم. این گاری رو میکشه همه کار میکنم. مثلا شما ببین درختها همه کار میکنن. خدا؟ اونم کار میکنه. اون که حالا کارش از همه ما بیشتره. کار عبت دیگه نمیدونم میدونم والا. اگه وقتی که زمین و زمون دارم کار میکنم یه دیش شرمشون نویاد بیکار رو چستم شما آقا دیگه نه اون کار کنیدیگه برو من هم بعدش باید اینا رو ببرم بدم روغنی درست کنن آقا یه مهمونه خیلی عزیزی دارم این کار بعد از تا دل باشه دیگه اگر تونسکی بسر به آسمون و در واقع خدا اشاره میکنه. گاری در راهی باریک بین درختان بلند آهسته حرکت میکنه. زاتور و کربلایی با سرعت و با نگرانی حرکت میکنن، بلکه سرباز سربازا پیدا کنن. در راه به مینیبوس قرمز و اسماعیل می رسن از اون هم سراغ میگیرن. نه، خبری نداره. جوان هایشه که از خورده توی مینیووس نشستن و به اونها نگاهی میکنن کربلایی ستار سوار بر موتور از راه های مختلف عبور میکنن دوتا تا از کنار اونها رد میشه از دو تا زن روستایی سراغ سرباز رو میگیرن و زنها راه نمایی یا برگردیم کربلایی این یاروهایی با جتم میومد به اینجا نمیرسید چه برزه پای پیاده؟ چه میدونم این سرباز دیگر رو دیدن؟ ها اونا, اونا سرباز رو دیدن که داره پیاده راه میره میستن و کربرای پیاده میشه کجا همینطوری سرت هم پایین و راست شکمه تو گرفتی داری میری؟ ها؟ سرباز حرفی نمیزن چودی کاسه داختر از آش بخیمه گرفتارمون بکنی؟ اصلا چطوری اومدی تا اینجا؟ پیاده که نیومدی کی تو رو آورده تا اینجا؟ یه وای. یه آقای با گاری با گاری می‌بینی چا ورلایی می‌بینی 5 سال گرم تو این جاته کار میکنم یه گاری ندیدم اولاد یه گاریاشون هم انداختن تو جاته پس فردا میخوام با فرغون زار این طرف اون طرف برام دیگه این بابا هم از صبح تا الان ما خودمون کردیم نه بابا ما که کارمونه پولش رو می‌گیریم پسر خیلی خرشانسی کبلایی بوده هر کی دیگه بود چی کار داشت به این کارا بنده خدا با اینا هم گرفتاری کی داره پسر خودم هم سربازه مثل این تو قربت خدا رو خوش نمیاد تنها ولش کنم تو این جاده که تا دو ساعت دیگه پر میشه از ظاهر دل خوشی هم از معمور ندارم تو این وزاکه بیا پسجم بیا سوار شو. کربلایی میخواد دست سرباز رو بگیره که سرباز دستشو میکشه لاغل دو, دو کلمه حرف بزن من ببینم چه مرگت می... سرباز مستقیم در چشم کربلایی نگاه میکنه باید برم برز کو به تو بی خود میکنه که بای گونده تو وقتی دید هوا پسه به اون که پنچهی لازه بگیره در رفت یور سوار شو یور سوار شو هرچی به زبان خود شد میگم حالی نمیشون خیلی حقا تو بگیرم به تو خورجین سب کن مگه تو از فرماندات دستور نمیگیری سرگروبان به تو گفت بری این کویا که معمور حالیشون نیست خود سرگروبان گفت یه نفر باید بالا سر ماشین باشه ببین من عازم خونه خدا کلی منتظر بودن تا نوبتم شده بعد از مردم حلالیت به طلبم باید حسابامو صاف کنه مرا گرفتار خودت نکن یه بلایی سرت بیاد فردا میونی علی منو میگیره امیر با تیپ همینشگیش از راه می رسه از موتور پیاده میشه کربلایی مستعسل به این ور و اون ور و سرواز نگاه میکنه ای والله بابا خوب گذاشته گرفتی رافتین سرویس آوردی بینوجی؟ آ با بابا کربلایی آ بالا دورایی آورده. بازه کوچ خبر. مم. طرف خونه عزیز که اصلا حرفشو نزنه. سوزانم نمیتونه براتون. کربلایی بچهای برادر از سر دارن با بانت میان. دارن میان پیشوازت. چی؟ زنگ زدم بهشون گفتم را افتادی. خوب کاری هم کردی. خدا رسولی هر چی بگی حق داری. میدونم خیلی به زور میشن ولی خوبیت نداشیم اینطوری بمونه. عمری هم دیگه نمیکنه. حالش خوش من داشتم میرفتم بررز کو به اونا چی کار دارم؟ اذیت نکن کربلایی حالا خواست خدا بوده این را رو بیای دیگه. والله به خدا درست نیست راه افتادن کلی تدارک دو تا برایشون خریدن دونه هشتاد تو هم خود و بردن اینجا سر ببرن خدا شاید الان یه هفته افتاده گوشه خونه نفسش بالا نمیاد چشش به داره که تو پیدات بشه تو این جواییکرول ای؟ چیکار میکننی؟ با میای. برم چیکار کنم؟ کجا؟ نخاط با این برگرده برگردی؟ کربلای بر نمیگرده این من نمیذارم برگرده چی بگم بالا؟ چی بگم نداره؟ عمری بازی کردی بسه دیگه الو الو برو تو انتن دیگه كربله. مردم رو تو حساب دیگه ای با میکنن تو که دیگه نباش کینه به دل بگیری بابا من کینه به دل نگرفتم که پسراش اومدن نشستن با هم صحبت کردیم صد بارم پیغون فرستادم که حلال کردم آقا حلال دست, دست از سر من برداریم تو نریک قبول نیست وقتی نمیخوایی بری یعنی حلالش نکردی دیگه خدا رسولش هم همینه دیگه خیلی خ. باش حالا که دارن میان همینجا منتظر میمونم این بابام بره به کارش برسته دیگه آها آه حالاشو به جور کربلایی کلیان کردم همه به <تصفيق> پولی به ستاره می میده ستاره باز بازم, بازم, بازم میخواد می شما که اولای... من میگه می ما که نداریم قابلی هم نداره ولی ولی حمیرارا الان با دوتا مسافر کربلایی باز هم به ستاره پولی داد کربلایی همین جای نفسی چاکمون الان میاد میای که سوار شد. به لپاسوت پیادات. کله نخواستم. خاصه. بابال به بشه. کربلایی میگه که منظورش سربازه. میری؟ سرباز با سر جواب منفی میده. کربلایی چپ چپ نگاهش میکنه. نه شما برو من خودم یه فکری به حالش میکنم. عثمان کاری نداره اخر میکنم میبرمش. نه برو. ستار هم میره. کربلایی از سرباز فاصله میگیره اما لحظه میایسته راه بیفتی بی. سرباز باز هم راه میفته کربلایی کنار درختی روی کنده میشینه سرباز با لبخند و خون سرد نگاه میکنه کربلایی میخوان گستند برات سر ببرن خوشت باشه بعدی اوم در به بعدی اوم کارگری مردم بعدی اوم گشنگی سریع خوردن و حمالی یا جون کندن حالا که وقت سروریت میخوان با یه گوستوند و اسفوند خرد کنند خوشت باشه سرباز به درخت بلند و برگهای اون که تشعشوات نور خورشید از ما بین ها پیداست نگاه میکنه بیا. بعد نگاهش به آسمون میرسی قد و قواره تو بودن که هر هرچی زمین و مال و حشم بود صاحب شد گفت برو برای خودت کار میکن تا مرد بشی برادر بی برادر پشت سرتم نگاه نکن حالا یاد برادر افتاده نب و نبیره ها منتظر عمشونن این عمون کجا بود؟ این سال ها که یادی ازش نبود؟ به برگ هایی که در باد حرکت میکنن نگاه میکنه این نم کجا بود بیا بگیر بشین اینا که رد شدن لا میافت من تا تو رو نصبرم دست سرگروبان خیالم راحت نمیشه جهت باد رو تشخیص داده و در ذهنش قبله رو تعیین کرده نزدیک چشمه میره با آب چشمه وضو میگیره و کربلایی نگاش میکنه با پای برهنه روی برک های پاییزی راه میره در جایی نیسته نمازش آغاز شد. با چشمان نمناک هم دو سوره رو میخونه هوا آفتابیه و صدای رد و برق میاد کربلایی متعجب به اطراف نگاه میکنه سجده و باز بهد کربلایی از رد و برق نماز سرباز به پایان رسیده و جوراب ها و پوتینشو میپوشه قبول باشه اینطور نماس خوندن رو از کی یاد گرفتی؟ یا آقای یا آقایی؟ کی بود؟ مسافر بود تو همون هشت پی دیگه ها؟ یه انگشتر اونجوری داشت به انگشتر عقیق کربلایی اشاره میکنه از بابامون فقط همین انگشتر به هم رسید اینم موقعی شستن خودم از دستش داره کربلایی هم نگاهی به انگشترش میکنه خدا بیا همیشه میگفت مردن یعنی رفتن به خونه خدا سرباز لحظه میمونه و مبهوت به کربلایی نگاه میکنه هر که میخواد بره خونه خدا باید مردم حلالش کنه بله اول حق الناس بعد حق الله کربلایی چتر و بخچش شو به کناری میذاره و بلند میشه کربلایی داره نماز میخونه و تقریبا نمازش به پایان رسیده. سلام میده. دو جوون بالا سرش منتظر تمام شدن نمازند ال برم. برم به خدا خوب کاری کردی که اومدی مننت آقا جون همین تو برادرزاده ها به زور رو نیست میشونمه. یا نکنه خوش بود <تصفيق> دست امو رو میبوسن نعمت به ابراهیم اشاره میکنه که باشه. سرباز پشت وانت نشسته ابراهیم تشکر میکنه و سوار وانت قرمزش میشه کربلایی پیش سرباز که سر به داره میره من چی به تو بگم؟ خب میخواستی من از اول بشیم شیم در پی دعوت ابراهیم سوار میشه و واند حرکت میکنه. سر سر به آسمان و آسمون آبی و برگ درختان سبز و نزارگر ابراهیم رانندگی میکنه نعمت و کربلایی هم بخن بشن وانت از جاده سرسبزی رد میشه برزکو که نرفتیم ما نرفتیم اما ابراهیم زنش برزکو نبود یعنی صبح دیدیم دختر کوچیکش. آه. واقع خونه شون نزدیک که خونه پدر آیا همه میگم از دیشب که خونه نفته اینا هم فکر کردن نفته مستشه ها تانکه هم بوده نفیه اینا فکر کردن هفته هم همونجام هم شب خوابیده من نصب شبیش صدای خوبه تانکم هم شی ای صبح شد کی؟ ها هیچی صبح دیدیم آقا بچه های عزیز آبادیو رو باشدن آمدیم بیرون با یکی ها پسراش ای یفیق هم اجبایی با هم بودیم گشته بودن. یعنی همون نسری شوی پسهاش با ما نمیخواد میگه. सब که میبینن کسی نیست میگن که ما که همه جا رو گشتیم. بریم ببینیم که تو مامزاده هست یا نه. از اینکه مامزاده که میرسای میبینن که بله. صداش میاد که داره قرآن میگه. از اینجا ببنیم. چی؟ بگو دیگه هیچی چی. رفتیم تو دین یه گوشه اینچسور در انگش مس دعا قوام میخون. و این کتابی جوش نبودا. حالا مطمئنی قرآن میخون شاید مفاتی دعای ها قرآن بود میدوند. از کجا میدونی؟ کربلایی مبهوت نگاه قرآن باید تا نخوندم و که تو آدیو خیر بعدش چی شد؟ چی؟ هیچی؟ هرچی صدایش دادیم این جوابی نمی هرچی مثل این اینکه آر... زده باشه؟ همین زود زده بود. هر چی صداش میذاریم عزیز عزیز هیچ. نگفت چی شده؟ آه؟ نه. سعی نش شده بود. حالا میتونی که امروز هم یه چیزایی گفته. انگاری عزیز دیروز میخواست برای تو نماز بخونه. کمی آقا میاد طرفش. آقای غریب است. از او یا او بوده حتما آقای میاد بهش میگه که بیا برای تو امام زده بخون. عزیز میگه آقا من سواد ندارم قران نمیتونم بخونم آقا بهش چرا یه بار و وانت در راه برزکو به در خونه برادر کربلایی رسیده گوسفندی رو جلوی پاش قربانی میکنه ادهی به استقبال اومدن و کربلایی در معیت اونها به خونه برادرش میرسه نعمت زودتر میدوه توی خونه سار هم پشت سرش نهایتا حمتیه ام موسی بود الله آقا جون سر بود الله اکبر الله اکبر بود الله تا دیگه شما برین سر ممنون. زن برادر کربلایی از دیگران خواهش میکنه که بره حالا کربلایی زن برادر و دیگران وارد اتاق میشن کربلایی برادر بدحالشو که روی جاده راست کشیده میبینه زن برادر کنارش میره کربلایی جلو میره و رو سفت در آغوش میگه زن برادر و نعمت و مردان دیگه هم عشق میریزن فقط ابراهیم گیج و گنگ به همه نگاه میکنه سرباز جلوی در خونه نشسته و به دیرک تکیه داده توجهی به رفت آمد و جنب و جوش اهالی نداره و یک گل سرخ تنها بین سنگها توجهش رو جلب کرده و به اون زل زده. دختری با کفش‌های قرمز و دامنی گلدار در یک سینی براش چای و خورما میاره بفرمایید چایی بفرمایید. سرباز سینی چای رو میگیره به رفتن دختر نگاه میکنه و بعد به گل قرمز که زیر پای دختر له شده و دختر هیچ توجهی به اون نکرد دستاش میدرسه سینی چای و خورما رو زمین میذاره میشه و خودشو به رودخونه می پسر دونده هم اونجاست پاهاش توی آب رودخونه گذاشته سرباز میخواد آبی به دست و صورت بزنه که نزن تصیف دست صورت بالاتر سرباز بلند میشه و به پاها و کفش خونی پسر نگاه میکنه دلش ریش شده کمی بالاتر میره و آبی به صورت میزنه میای. به خونه برادر کربلایی اشاره میکنه چه خبره؟ همه چی رفتن برزکو. یه نفر میخواد بره خونه خدا آ پس به سلامت میخواد بره مکه میخواد بمیره بمیره؟ پسر دونده کفششو در میاره خب اینم میشه کفیه کفش دهن باز کرد همه بازشفا میرم برز کو اونم خب باهاشو توی آب گذاشته که بتونه خستگی و درد و تحمل کنه و سرباز بهش نگاه میکنه. دو سال وقتی داشتن زره مامزاده رو میکردن. می یه دفعه گران خطی پیدا کردن همون اومدن تماشا ماموران وقت دیدن حریف مردم نمیشن. قرآن گران ورداشتن ما خودشون بردن سرباز که میخواست آبی بنوشه، اون رو به صورتش می یه تو موزه است بعد گفتن یکی میاد تو خواب غلام علی مهمار سه شب که چرا واسمان زاده کار نمیکنه منم همون سال نز کردم از سروازگی برگشتم سه اگه یه کار خوب گیدم بیاد ارسال زهراش را یه گسفنه گربونه کنم با این میشه نمیشه که که آقا چشم دلت سیره می ولی این گوسفنده داره می پره ها خود دانی رو به سرباز هم نگاهی با آسمان می دست بای جزب. پسر دونده روی ها دراز می دست بر پیشونی و چشمش میذاره که استراحت کن امیر با موتورش از راه میرسه سرباز نگاهی می کنه همه به استقبال امیر اومدن نعمت که بچه بغلش بیرون می امیر برگشته زن برادر کربلایی که کنار همسرش رو کربلایی نشسته نگاهی به بیرون می کربلایی روی فرش کنار بستر برادرش دانه های ارزن میبینه چندتایی رو برمیداره نگاهی میکنه هم دو سال پیش که افتاد من جا یک کمی ارزن برز من رخت خویش که پشتش سخت اما چفایی کل سخت در کنار زیرانداز برادر ارزن های است و جایی که سوراخ شده و ارزن بزنی میریزه نعمت و ابراهیم توی اتاق میره. امیر میگه تو برزکو معجزه شده بگو امیر بیاد بروگو بیاد دیگه چی؟ دیگه. امیر آقا ابراهیم میره یه پسر بچه کور تو تراکتور بوده خابیده بیدار شده شفو گرفته لا الاخه الالله جلل خاله چه میدونم والله نکر شک نکن عزیز نفسش حقه اگه شما هم عزیز میشنستیم؟ ها که اشناسو همین چند وقت و بد بید اوید ایادتون همچونیش هست تیز قالی بر نکن هر جا که نامرهم باشه سرشو بلند نیکنه بو او خدا کربلایی مو ما همچه که دیدم میشه دیلم جا گره انگار نه انگار ناخوش بیدم اون موقع چقدر قرآن بلد بود؟ هیچ خوندن نوشتن که بدد نپید هیچ فقط اشنیدم من مسجد بعد نماز ای قرآن وای کرد او هی نگاهی کرد هی نگاهی کرد همه ایگو بند خدا تو که نه فارسی شو ایدونی نه عربی شو پس چه نگاهی کنی ایگو قرآن کلام خداست نگاه کردنش هم نباس قافل بید بدبخ همیشه حسرت خوندن نوشتن داشت کربلایی سرش به زیر میندازه چه میدونم بالادار؟ کربلایی سر جده تااهر راضی کن بریم طی عزیز. خدان چه دیدی؟ شاید یه ن شفا پیدا کرد. ما ایدونم حرف شما نه زمین نیزنه ما که هرچه گوم گم اگه عزیز بیاد سر خاکم سیم قرآن بخونه برادر به سختی نفس میکشه و کربلایی مقموم بهش نگاه میکنه. محیطبان کنار رودخونه و پسر دونده میاد تا دستهاشو بشوره پسر دونده نیمخیز میشه و بعد میشینه. آهای آشو بینم مینبوس اومد مینبوس هم بقیه تو گوره کنی تکون بخور رسیدن اینا نمیتونم دیگه باریدم حرف یا میزنی ها نفر پشت سرتم تکون بخوری رسیدن آخه با این کف چشونه مگه؟ به دادی بردی. پسر نگاهی میکنه و متوجه میشه که سرباز پوتیناشو برای اون گذاشته و کفش های پاره خودشو پوشیده و رفته دختر بچههایی که پشت وانت ابراهیم نشستن به کفش های پاره سرباز میخدن امیر لحاف به دست میدونه کربلایی چتر رو بخشه به دست پیش سرباز میاد که پولایشو رو امیر آقا سرباز یالا جون سایمون چی اینارو بده به من کربلایی چتر بغچه به دست پیش سرباز میاد که رو سرش گذاشته با تو دستمندم بده دیگه ابراهیم برادر کربلایی رو به کول گرفته و با کمک نعمت توی وانت میذارن تا به برز کوه ببرن این اسمت هم نمید. کربلایی و کلاه رو از سرباز میگیره اتیکت اسمش هم میکنه اون. می با من میاد نه اینا رو یه قایم وسایل سرباز رو به امیر میده و پیش سرباز برمیگرده نگاهی به کفشای پارهی توی پاش میکنه از اون پایین همینا پات بود خیلی خوب بهتر این پیرانت هم عوض میکنیم که خیالمون راحت بشه امیر اونم یه پیران از یکی بگیر بده بهش بپوشه برشتا بیار کشم اونجا هم زیاد دوره بر من نیا اگرم هم کسی ازت پرسید که اومدی برز کار، بگو میخوام برم امامزاده زیارت خوب سرباز لبخندی میزنه و قبول میکن کربلایی طرف وانتی چه بریم امیر پیرهن آبی روشن رو به سرباز مونده سرباز دنبال جایی برای تعویز پیرهن می گرده کجا؟ به پشت دیگه خجالت می خجالت پیرهنه سربازیشو در میاره و پیرهن آوی کمرنگ بی اغر رو میپوشه سرباز بر میگرده و واند که راه افتاده رو نگاه میکنه امیر سرباز رو بر ترک موتور سوار کرده و به سمت برز کوه میبره لخانه ما نفهمیدیم دو تو با این قیافت برای چی داری میری برز کوه؟ میخوام برم امامزاده زیارت. توی ماشینه. همین پایین یا آسیاب آبی بود دو هم شما قد نمیده ما هم بچه بودیم که سیل آسیاب ابراهیم به بخشه کربلایی نگاهی میکنه آمون این چیه با خودت از اون پایین آوردی هیچ این مادر ایال ما <مشن> کفنشو <مشن> <مشن> داده بدم عزیزم ابراهیم گیج شده قدیما رسم بود میگفتن اگر 40 تا مؤمن کفن آدم امضا کنن سال جواب نمیشه دو تا مسافر جلوی امیر دست بلند میکنن موتور رو متوقف میکنه نمیدونی چه دل همسیره قربونی خیبری هم ها پس بی خود داریم یه از این بار بری نزدیکتره زیاد شد دیگه عملیات دو نفری ما سوار شین این رفیقمو میره امامزاده همین راه مال رو بگیری میرسه امامزاده ما درختارو که رد کردی امامزاده خودش دیگه میشه سرباز تنها مونده و آنی رفته. دستی به جیب پیرهن میزنه هیچ پولی هم داشت نیست دلو به دریا میزنه و از راه مال رو میره به یک دوراهی میرسه به ناچار باید راهی رو انتخاب کنه همین کارم میکنه در ابتدای راه پاش پیچ میخور و میافت درد داره قطر اشکی از چشمش روی گونش میچکه انگار ندای اونو میخونه به اطراف نگاهی میکنه و قدم در اون یکی راه میذاره حتماً خیلی در افتادنش بوده به آسیابی آبی رسیده جای بسیار سرسر چرخ آسیاب میچرخه پیرمردی می میبینه که گونی آر بر پشت از آسیاب بیرون میاد پیرمرد به اون نزدیک میشه دستی به شونش میزنه و لبخندی بهش تحویل میده و میره همون پیرمرد گاریچی بود گاریچی گونی رو روی گاری میندازه سوار میشه و میره سرباز که رفتن اونو نگاه میکنه دستی هم براش تکن میده. به طرف آسیاب سربر میگردن و پیرمردی چپق به دست در کنار رودخونه تکیه داده به درختی بینه عجیبه شبیه دو پیرمرد قبلیه سلام علیکم سلام علیکم خیلی قشنگه که شما از این وری دیدی امام زاده بر پشت سرش اشاره میکنه آقا, آقا خیلی سال دیگه هیچکی از این وری ندیده همه از این وری می‌بینن <تصفح> موسیقی که لغمه رو اینجوری اینجوری بذاری درد سرباط قصد رفتن می‌کنه. کجا بشین بشین بشین نفذ چاخ کن پیرمرد میره و می‌شینه. پیرمرد چپقه چاخ شدهش رو میکشه دلت گرفتاره دل همه میگیره دل داشته باشه میگیره دیگه یا رفیقه من رفیق لح... ای رفیق کسی که رفیقی نداره <تصفيق> تو هم قشنگی <تصفيق> خودی خب حالا بخوای بخوای یه رایی بهت یاد بدم دلت باشه تو چشماتو ببند ده ببند دیگه سرباز چشماشو میبنده خب چی میبینیم هیچ کس خب هیچ کس با دیگه هیچ کس همه کسه همه کس هیچ کسی؟ حالت خوب شد بله خب بله از هزم <تصفيق> چشماشو باز میکنم پیرمرد بلند میشه و دور میشه سرباز با چهره نورانی تر از پیش از بین درختان سبز و گلهای زرد و نارنجی رد میشه چند نفر رو میبینه که دارن از امامزاده بر میگردن خودی نره امامزاده خبری نیست که به رفتن اونها نگاهی میبین. یک انگار باز هم ندای اونو میخونه دختری که گلهای سرخی در دستشه به اون نگاه میکنه سرباز رفته به طرف امامزاده خانوادهی که از امامزاده برگشتن از کنار همون آسیاب آبی رد میشن نگاهی و مطروکه بیش نیست و چرخ آسیاب نمیچرخه در برز کوه نزدیک خونه عزیز اده زیادی بسات کردن یکی نوار مذهبی میفروشه یکی مرغ و خروس یکی بچه معلول روی ویلچهرش رو آورده برای شفا یکی چادر نماز میفروشه یکی لباس کبابی هم برپاست و خیلی هم شلوغ کسی هم تمثال مبارک ائمه علیه السلام رو میفروشه تعدادی زن و دختر از روی پشت بومی تماشا میکنند. تعدادی بسات پهن کردن و نهار میخورند. بعضی برای تفریح و بعضی هم منتظرن تا برای شفا پیش عزیز برن بعضی ها بعد از مدت ها همدیگر رو دیدن و خوشحال از دیدار هم رو بوسی میکنن و برادرش رو همراهان هم رسیدن نیمت به ابراهیم کمک میکنه تا برادر کربلایی رو از پشت وانت پیاده کنه. بیار دیگه ابراهیم چی؟ بیچی شما دختر معلولی با عصا و دختری با ویلچر به سمت خونه عزیز میره به سر جوانی میدونه ادهی در قسمتی جمع شدن و میخوان خودشونو به مرکز تجمع برسونن کربلایی لحظه‌ای به همه مردمی که اونجان نگاه میکنه و راه می سرباز از تپهای بالا میده به امامزاده نزدیک شده لحظه‌ای نیست خوشحال نگاه میکنه مردم جلوی خونه عزیز تجمع کردن کربلایی از لای جمعیت خودشو به امیر میرسونه به در خونه رسیدن سلام عليكم کهار بالا یکو هم سلام عليكم بیا بیا بیا کهار بالا یکو درو بکن درو بکن وقت چرا اینکاش شدی دادا امی پسر کی مردم دوست یه که کردم اگر درو بکن درو بکن کهار بالاییوم هست هفته بورگانه این دسترس یام راف اموزاده در کردم را اونجا پیاده را چرا را آقا جان من یا الله را یا الله حسین پیدا را کو گور برو تو برو تو حسین را نداره تمام شد تمام شد لحظه در باز میکنن که کربلایی وارد شه بلا فاصله درو سرباز در فضای مه گرفته امامزاده ایستاده و به اون نگاه میکنه. به در امامزاده رسیده. در قفله. کنار در امامزاده میشینه. کربلایی از بین مردان که درون خونه عزیز هستند رد میشه. به زنها میرسه و دست آخر به عزیز که چادر بر سر پشت به همه نشسته و صحبت میکنه گفتم من که بلد نیستم قرآن بخونم من که سواد ندارم گفت برو تو امامزاده از اون سربازی که داره قرآن میخونه یاد بگیر گفتم کسی تو امامزاده نیست الان اونجا رو جارو کردم کلید رو نشونش دادم گفتم خودم الان درش قفل کردم سرباز به در قفل شده امامزاده نگاه میکنه و بعد چشماشو میبند لحظاتی بعد چشماشو باز میکنه سینی بغندستشه با گرسی نان و کاسه غذا. مبهوت نگاه میکنه و از جا بلند میشه دوباره جلوی در امامزاده میسته خونه عزیز عزیز در فضای تقریبا تاریک به حرفاش ادامه میده با اساش امامزاده اشاره کرد خودش راه افتاد منم دنبالش رفتم به دم درک رسیدیم گفت برو تو جلو پامو نگاه کردم سرباز پاهاشو از کفش های پاره و خونآلود بیرون میاره و به سمت امامزاده راه میافته عزیز یه جفت کفش کنه پاره دیدم رفتم تو دیدم کنار زری یه جوانی نشسته روبه قبله پشت به من صورتشو نمیدیدم یه لباس آبی کمرنگ گشادی تنش بود آیه صدای خوشی داشت قرآن می خون. اونم پشت سر من اومد گفت بشین همون جا نشستم پشت سرمون جبون گفت گوش بده کربلای و زنان حاضر مبهوت صحبت های عزیز نمیدونم چطور ولی میدونستم این ای که این جبون داره میخونه سوره مریمه چقدر گذشت من نمیدونم به حال خودم نبودم میخونم مثل اینکه یکی داشت تو سینه من میخوند مثل اینکه یه چیزی داشت از تو سینه من میزد بیرون بیتاغت شده. همین که سوره تموم شد منم از حال رفتم حالا هم به مردم بگید من همین یه سوره رو بلدم بخونم ندید این طرف و اون طرف بشینید بگید عزیز همه قرآن رو بزن. عزیز گریه کنان سر به آسمون میبره زنهای دیگه هم گریه میکنن و کربلایی که گیج و مبهوت به سرباز فکر میکنی یکونی کنان و کانت رایتی فقط بلغتو نرکه بره <تصفيق> اتی قاره کزاری قاره که هو علیه هیینو فقط خلقتو که من قبل و لم تکشهی قال ربك 50 آيه قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ليال سوي فخرج على قومه من المحراب ففاواه إليه ان سبحه بكره اشي يا يحيى خذ الكتاب وبقوه و هنانم لدنه و زکاة و کان تقیه و برم به بالده و لم یکون جبارن نسیه و سلام علیه و, و يوم يوم کتاب از اين من اهل مكه نشر گیا من دونهم حجابا ارسلنا اليها روحنا فتمس لها بشرا وهي قالت اني اعوذ بالرحمان منك ان کن كنت تريا قالت ان انا رسول ربك لا لك كلام من سكي يكون لي كلام ولم بغيا ربك وفعلي. وفعلي. وفعلي. رحمتی منو زبانه درم کربلایی آروم خونه عزیز رو ترک میکنه مردم منتظر رو میبینه سرگروهبان که دست پسر معلولی رو گرفته پیش کربلایی میاد سلام کرد برید سرواز مایی بیر کردو رو ده با با با شب شد نفت خوب بشید خابش تحبید شد برد شان میگفتند که یه شب خوابی میگه آقای اشاره میکنه برزکوو میگه تو باید دیروز این زیارت شو. تو برگشت چه کردی؟ از دیدی راست میگه، دروغ میگه، دروغ میگه. دیدی چه کنن؟ چه مردم در اثر حجوم در چوبی حیات خونه عزیز و میشکنن و وارد میشن و کربلایی که همچنان مبهوت و در خود راه میره کربلایی بغچش شو باز میکنه کفن رو در میاره باز میکنه و نام قیس رو روی کفن میبینه مریم توی خونشون کیسه نونیو که از کربلایی گرفته از کیفش در میاره بلند میشه و لنگ لنگان ماریم؟ پیش مادرش میره. مادر جان رو جا کن شب شد من میرم بر مادر پیت نفت به دست از خونه خارج میشه. مریم لبه بالکن میشینه و تک نون خشک توی کیسه رو خالی خالی میخوره. صدای رد و برد اونو به خودش میانه بلند شده و سعی میکنه مرغ و خروس ها رو جا کنه ولی اونا از دستش فرار میکنن و اون نمیتونه اما انگار پاش کاملا خوب شده و خودش حواسش نیست نده فیلم سینمایی یک تکنان رو با همدیگه شنیدیم. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. مثل همیشه از شما درخواست میکنیم که با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو یاری بفرمایید. ایام سوودواری آقا ابو عبدالله حسین رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکن و آرزو میکن که ما بتونیم رهروی برای این عزیزان باشیم. در این برنامه هم مثل همیشه، جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار خوب برنامه یاریگر ما بودند و تهیه کننده محترم برنامه هم جناب آقای فرشاد آزرنیا و بنده هم که در خدمت شما بودم و این سعادت رو داشتم که باز هم انجام وظیفه کنم بهرام سروری نژاد تا برنامه دیگه خدا نگهدارم